بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداونده به اندازم غربان نهایت باره این اعلام انحلال تعهدات بیزاری است از جانب خدا و پیانبر او و کسانی از مشکان که با ایشان پیمان بستید. پس شاه ما در روی زمین گشت و گذار کنید و بگانید که خداوند را آجه ساخته نمی توانید و خداوند کافران را حتما رسوا ساخته نیست و ابلاغی است از جانب خدا و پیامبر او با مردم در روز حج اکبر که خداوند از مشرکان بیزار است و پیانبر او نیست پس اگر توبه کنید این بخیر شماست ولی اگر از توبه خود داری کنید پس بدانید که خداوند را آجه صافتا نمی توانید و کافران را به عذاب درناک بشارد بدید مگر کسانی از مشرکان که با ایشان پیمان بستید و سپس با شما به چیزی کوتاهی نکردن و بر شما کسی را پشتیبانی نکردن پس پیمان خود را با ایشان تا موعد معین آن به سر رسانید حقا که خداوند پرهیزگاران را دوست می پس چون های حرام به سر رسید در هر جایی که مشرکان را مییابید بکوشید ایشان را بگیرید، محاصره کنید و در هر کمین گاهی به سر راهشان بیمیشید یعنی طوری که هم های آمد و شد بر ایشان بسته شود اگر توبه کنند و نماز را به تمام کمال برپا دارند و زکات بدهند پس راه ایشان را بازگذارید حقاق خداوند آمرزنده و مهربان است و اگر یکی از مشرکان از تو پناه بخواهد او را پناه بدی تا کلام خدا را بشنود و سپس او را به محل امنش برسان این سببی است که ایشان مردم نادانی هند. چطور می تواند نزد خدا و نزد پیانبر او برای مشرکان پیمانی باشد جز کسانی که شما با ایشان در نزد مسجد الحرام پیمان بستید پس رهنگامی که آنها در پیمان خود در برابر شما پاور جا باشند شما هم با ایشان پاور جا باشید حقا که خدا وند را دوست می دارد. چطور می تواند چنین پیمانی پا بر جا باشد در حالی که اگر بر شما غالب آیند در مورد شما نه علایقی خیشا را رعایت میکنند و نه هم پیمانی را شما را به زبان خود خوش می سازند ولی دل‌هایشان از شما متنافر است و اکثریشان فاسقه در برابر آیات خدا باهای ناچیز گرفتند و بسا مردم را از راه او باز داشتند حقا که است آنچه ایشان میکنند در برابر هیچ مسلمانی نه علایت خیش و ایندی را و نه هم پیمان را و هم ایشان انتجاوزگه پس اگر توبه کنند و نماز را و تمام کمال برپا دارند و زکات بدهند برادران دینی شمایند. و به این ترتیب آیات خود را به که می دانند تفصیل می و اگر سوگند های خود را بعد از پیمان بستن نعض کردن و دین شما را مورد تن قرار دادند پس با پیشوایان کافر مقاتله کنید. بگمان ایشان را سوگند نیست یعنی به سوگند خود پابند نمی باشند تا باشد که خودداری کنند. آیا با مردم مقاتلا نمی کنید که های خود را نقص کردند و به اخراج پیامبر تصمیم گرفتند و ایشان بودند که اول به جنگ در برابر شما آغاز کردند آیا از ایشان می ترسید پس خداوند سزاورتر است که از او بترسید اگر مسلمان هستید با ایشان مقاتلت کنید خداوند ایشان را به دست شما عذاب می کند ایشان را رسوا می سازد شما را بر ایشان پیروز می گرداند سینه های گروه مسلمان را شفا می بخشد و خشم دلهایشان را می زوداید. خدا توبه هر کرا بخواهد می پذیرد خداوند دانا و با حکمت است آیا که که از شما صرف نظر خواهد شد و خداوند آن ای از شما را که جهاد کردند و جز خدا او و مسلمانان کسی را محرم اسرار خود نگرفت متمایز نمی و خداوند به اون چی می آگاه است برای مشکان مجاز نیست که مساجد خدا را اعمار کنند در حالی که ایشان بر کفر خیش گواهند همینهای که اعمالشان هبیته شده است و ایشان هم که در آتش همیشه بیگمان کسی مساجد خدا را از نظر عبادت و ساختمان آباد می سازد که با خدا و روز آخرت ایمان آورد نماز را به تمام و کمال و پا دارد زکات را بپردازد و جز خدا از کسی دیگر نترسد پس امید می رود که چنین کسانی از آن باشد آیا عبدادن حاجیان حفظ یا مراقبت مسجد حرام را و عبادت کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده اند مساوی می پندارید؟ هرگز در نزد خداوند این دو گروه مساوی نیستند و خداوند گروه استنگاران را رعیاب نمی سازن. هایی که ایمان آوردند، هجرت کردند و در راه خدا و مال و جان خیش جهاد نمودند در نزد خداوند در جه زن و هم ایشانند پیروزمند پروردگارشان و آنها رحمت را از نزد خیش و نیز ویزام نیخیش و جنت را بشارت میدهد که در آنها نعمت های جودانی است ایشان در آن جودانه و سر میبرند گمان این خداست که در نزد او مزده بزرگ است بای مؤمنان پدران و برادران خود را در صورت که کفر را بر ایمان برگزینند دوست مگیرید و اگر کسی از شما ایشان را دوست میگیرد پس همه ایشانان ستمگاه بگو اگر نزد شما پدران شما فرزندان شما برادران شما همسران شما خیشواندان شما سروتی که اندوخته، تجارتی که از کساد آن بیم دارید یا منازل ریهایشی که به آن خوشلود میشوید از خدا پیانبر او و جهاد در راه او خسندیده تر باشد پس در انتظار آن باشید که خدا فرمانش را صادر کند یعنی شما را مورد عذاب خیش قرار دهد و خداوند مردم فاسق را هدایت نمی کند بیگمان خداوند شما را در بسا میدان ها مدد کرد و در روز خانه نیمز آنگاه که شما را کثرت جنگاوران شما به شگفت انداخت اما آن کثرت جنگاوران نیازی را از شما دفع نکرد و زمین با هم فراخیان بر شما تنگ گشت و سپس پشت گشتانده عقب نشینی کرد بعد از آن خداوند آرامش خود را بر پیانبر خیش و مؤمنان ارزانی فرمود و علشکرهای را فرستاد که آن را ندیدی کافران را عذاب کرد و این از جزای کافران بعد از آن خداوند توبه هر کسی را که بخواهد می پذیرد و خداوند آمرزگار و مهربان است این مؤمنان و وقت مشکان پلیدند بنابراین بعد از این سال ایشان به مسجد الحرام داخل نشوند و اگر از فقر میتسید در صورت که خدا خواسته باشد شما را به دودی از فضل خیشتوانگر می سازند بگمان خدا و دانا و با حکمت است با کسانی که نه با خدا ایمان دارند و نه هم با روز آخرت و نه چیزی را که خدا و پیانبر او حرام گردانیده حرام می پندارند و نه هم دین حق را می پذیرند با چونی مردم از اهل کتاب مقاتله کنید تا با احساس تسلیمی جزیه بدهند و ایشان ذلیل باشند یهود گفتند که زائر پسر خداست و نصارا گفتند که ایسا پسر خداست این گفتارشان است و دهانشان گفتاریست بیهوده ایشان به این گفتار خیش برکاتران پیشین شباهت دارند خدا آنها را بکشد. چگونه از راه حق برگردانیده می شود؟ که و رهبانان خود را به جز خدا و حیث معبود گرفتند و نیز مسیح پسر مریم را در حالی که معمور نشده بودند مگر به اینکه که خدای یک تا را بپرستند ذاتی را که جز او هیچ معبودی نیست پاک است از آنچه شریک می آورد می تا نور خدا را با دهنهای خیش خاموش کند ولی خداوند این را نمی بذارد. تا اینکه نور خود را کامل کند اگرچه مشرکان را خوش نیاهد اوست که بر خود را با هدایت و دین حق فرستاده است تا آن را بر همه دین ها و پیروز سازد اگرچی مشرکان را خوش نیاد ایم امینان بگومان بس از علماء و رحبان ها واقعا مال مردم را بناحق می خورند و مردم را از راه خدا باز می و کسانی که تلاو نقره را زخیه می کنند و آن را در راه خدا خرش نمی کنند پس ایشان را به مجازات در ناب بشارد روزی که بر آنها آتش روزخت تابنده می شود و با آنها پیشانی ها و پهلوها و, و پشتهایشان داغ کرده می شود و با ایشان گفته می شود این از چیزی که آن را برای خود زخیره کرده اید پس بچشید چیزی را که زخیره کرده اید بیگمان شمار ماهها نزد خداوند 12 ماه است در کتاب خدا در روزی که آزمانها و زمین را آفرید چنین حکم شد از آن چهار چار ماه آن حرام یعنی صاحب حرمت است این است رویش استوار پس در این دوره چهار ماه بر خود ستم نکنید و با مشرکان همه مقاتله کنید چنان که همه ایشان با شما مقاتله می و بدانید حقا که خداوند با پرهیزگاران است نسقی یعنی تأخیر های حرام است در کفر که با آن کافران گمراه گردانیده می شوند ایشان ماه را یک سال حلال و همان ماه را سال دیگر حرام می شمارند تا شماره ماههایی را که خدا حرام ساخته پوره کنند و به این ترتیب آنچه را خدا حرام گردانیده حلال سازند اعمال ناشایسته ایشان به نظرشان خوب جلوه می کنند و خداوند گروه کافران را رهیاب نمی سازند ای مؤمنان شما را چی شده که چون به شما گفته می شود در راه خدا به جهاد برایید خود را به زمین سنگین می سازید یعنی از جان نمی جنبید آیا به زندگی دنیا به وضع آخرت خوشنود می در حالی که متای دنیا در برابر آخرت نیست مگر اندک اگر به جهاد بر نیایید شما را به عذاب دردناکی عذاب می کند و قوم دیگر را به جای شما قرار می دهند و به خدا هیچ ضرری رسانیدن نمی توانید و خدا به هر چیز تواناست اگر او یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم را کمک نکنید بیگمان خداوند او را هنگامی کمک کرد که کافران او را بیرون راندند او دوم دو نفری بود که در غار بودن انگامی که با یار خیش میگفت غم مخور که خدا با ماست پس خداوند آرامش خود را بر او نازل فرمود و او را با لشکرهای تعیید کرد که آنها را نمی دیدید و کلیمه کافران را شروع تر ساخت یعنی ایشان را زبون و خار گردانی و کلیمه اراده و حکم خدا همان است بلندتر و خداوند صاحب قدرت مونی و با حکمت است به جهاد برای بار یا گرانبار و در راه خدا به مال و جان خود جهاد کنید این برای شما بهتر است اگر بدانید اگر دستاورد زودرست و سفر آسان می بود، بیشت تو را پیروی می کردن، مگر مشقت بر ایشان دراز شد، به زودی با خدا سوگند می خورند که اگر می توانستیم، بیگمان با شما بیرون می شدیم، ایشان خیشتن را حلاک می کنند. و خدا می داند که بیگمان ایشان یقینا دروگویند، خداوند تو را چرا ایشان را اجازه دادید تا کسانی که راست گفتند به تو روشن می دروغ و دروگویان را می شناختی؟ آنهایی که با خدا و روز جزا ایمان دارند، از تو از اینکه که با مال و جان خود جهاد کنند، اجازه نمیگیرند. گیرند و خداوند با حال پرهیزگاران آگاست؟ صرف آنهایی از تو اجازه می گیرند که با خدا و روز آخرت ایمان ندارند دلهایشان در شک است و ایشان در شک خیش بعد ترددند اگر اراده بیرون شدن را می داشتند بگمان برای آن آمادگی می گرفتند ولی خداوند از بیرون شدنشان ناخشنود بود پس ایشان را سست گردانید و گفته شد با کسانی که اند بینیشین اگر در بین شما بیرون می شدن، با به شما جز سوستی چیزی دیگر نمی افزودن. و در بین شما شایع پراگنی می کردن، تا شما را به فتنه اندازند و در میان شما کسانی هم بودند که به ایشان گوش فرامی می دادند و خداوند به حال ستم گاران آگاهست بیگمان از پیش نیز فتنه جویی کرده بودند و کارها را برای تو وارونه کردند تا آنکه حق جای خود را گرفت و حکم خداوند غالب گردید در حالی که ایشان کراهیت داشتند و از ایشان کسانیاند که می گوین برایم اجازه بده و مرا به فتنه مینداز هان به فتنه افتادن و بیگمان دوزخ به کافران از همه جوانب فراگیرنده است اگر به تو خوشی دست دهد، ایشان را ناراحت می سازد و اگر به تو مصیبت برسد، می گویند مصلحت خود را قبلا در نظر گرفته اید و با شادمانی بر می بگو جز آنچه خداون نصیب ما کرده به ما نمی رسد، او است ما و باید مؤمنان خاص با خدا کل ورزد. بگو آیا برای ما جز این دو خوبی یعنی پیوزی یا شهادت انتظار میبرید ولی ما با شما انتظار میبریم که خدا برای شما از نزد خویش یا به دست ما عذابی برساند پس انتظار بکشید ما هم با شما انتظار کشنده هستیم بگو با خوشی یا ناخوشی خرچ کنید از شما هرگز قبول نمی شود زیرا شما قوم واقعا فاسق هستیم و هیچ چیز معنی قبول صدقاتشان نشده جز اینکه ایشان از خدا و پیامبر او انکار کرده ان و به نماز نمی آیند مگر با کسالت و در راه خدا خدش نمی کنند مگر اینکه کراهیت دارد پس دارایی و اولادشان تو را به شگفت نیاندازد در حقیقت خدا میخواهد خواهد ایشان را به این دارای و اولاد در زندگی دنیا عذاب کند و جانشان در حالت براید که کافرند و به خدا سوگند میخورند که واقعا ایشان از شمایند ولی در حقیقت ایشان از شما نیستند مگر ایشان مردمی اند که از نشان دادن چهره واقعی خود سخت می ترسند. اگر پناهگاهی گاهی یا غارهای یا درآمدگاهی می یافتند واکن بر سوی آن عدول کرده می بودند و با شتاب می رفتند و از ایشان کسانی آن که بر تو در مسئله تقسیم صدقه ها عیب نمی اگر به ایشان سهمی از آن داده شود خوشنود می شوند ولی اگر به ایشان از آن داده نشود در آن حال نک می گردند اگر صرف با آنچه خدا و پیامبر او برایشان داده بود راضی می شدند و می گفتند برای ما خدا بسنده است خدا و پیامبر او به زودی از فضل خویش برای ما می دهند. ما واقعا از خدا می خواهیم نه از کسی دیگر این برایشان بهتر بود بگمان صدقه ها یعنی زکات برای ناداران، مسکینان، معذفان اداره و جوهات زکات معالفت القلوب آزادی بردگان پرداخت قرض قرضداران و در راه تقویت آین خدا و برای مسافران فریزه است از جانب خدا و خداوند دانا و با حکمت است و از آنها یعنی منافقان کسانی اند که پیامبر را ازیت می کنند و می گویند او شنوای سخن هر کسی است یعنی گفراو است بگو او سخن شنوی است که خیر شماست او به خداوند ایمان و به مسلمانان اعتماد دارد و رحمتیست برای کسانی از شما که ایمان دارند ولی آنهایی که پیانبر خدا را اذیت می کنند برایشان عذابی دردناک است برای شما به خدا سوگند می تا شما را خوشنود سازند ولی خدا و رسول او سزاوار ترند که خوشنود ساخته شوند اگر ایشان مؤمن هستند بایانه می دانند کسی که با خدا و پیانبر او مخالفت و نزاع کند حقا که برایش آتش دوزخ است در آنجا همیشه به سر می برد این است رسوایی بزرگ منافقان از این می ترسند که مبادا سوره در باره ایشان نازل شود که ایشان را به چیزی که در دلهایشان است آگاه می سازد بگو تمسخر کنید بیگمان خداوند چیزهایی را که از افشای آن می ترسید برملاکننده است اگر از ایشان بپرسی با تأکید میگویند ما صرف حرفی می زدیم و مزاحی می کردیم بگو آیا با خدا آیات او و پیامبری او تمسخر می کردید بهانه نکنید بیگمان بعد از ایمان خود کاثر شدید اگر ما گروهی از شما را عفو کنیم گروه دیگر را که گناهکار بودند عذاب میکنیم مردان منافق و زنان منافق از هم دیگرند به کار بعد امر میکنند و از کار پسندیده باز میدارند و دست های خود را از داد و دهش فرو میبندند خدا را فراموش کردهاند. پس او هم ایشان را فراموش کرد بیگمان منافقان هم ایشانند فاسق. خداوند به مردان منافق و زنان منافق و کافران آتش دوزخ را وعده کرده است در آن همیشه به سر میبرند این برایشان بسنده است و خداوند ایشان را لعنت کرده است و برایشان عذابی است دایمی درست کسانی که پیش شما بودند از شما در نیرو قویتر بودند و مال و اولاد بیشتری داشتند ایشان از نصیب خیش بهره اندوز شدند شما هم از نصیب خیش بهره اندوز شدید همان گونه که آنهایی که پیش شما بودند بهره اندوز شدند و با گفتار بیهوده منهمک شدید چونان که ایشان منهمک شدند همانهایند که اعمالشان در دنیا و آخرتها بتشد است و هم ایشانند زیانکار آیا به ایشان داستان هر نرسیده است؟ داستان قوم نوح عاد و سمود و قوم ابراهیم مردم مدین و شهرهای زیر رو شده برای ایشان پیامبرانشان، ایشان با نشانهای روشن آمدند خدا بر ایشان ستم نکرده بود بلکه این خود آنها بودند که بر برخیشتم ستم می کردند مردان مسلمان و زنان مسلمان دوست و حامی یکدیگرند به کارهای پسندیده امر می کنند و از کارهای بد باز میدارند. نماز را به تمام و کمال برپا می دارند زکات را میپردازند. و خدا و پیامبر او را فرمان میبرند. هم ایشانند که خداوند به زودی ایشان را مورد رحمت خویش قرار میدهد. دهد حقا که خداوند صاحب قدرت مونی و حکمت است خداوند برای مردان مسلمان و زنان مسلمان بهشتهایی را وعده کرده است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و ریها های پاکیزه در بهشتهای همیشگی و بزرگتر از همه رضای خداوند و این از تومانا پیروزی بزرگ ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سختی. جای ایشان دوزخ است و چی بد جای است؟ با خدا سوگند می خورند که کدام چیزی بد نگفتند ولی شکلی کلیمه کفر را به زبان آوردند و بعد از اسلام خیش کافر شدند و تصمیم به چیزی گرفتند که آن را به سر رسانیده نتوانستند انتقام نگرفتند مگر این را که خدا و رسولش ایشان را از فضل خیش به نیاز ساخته است اگر توبن و این برایشان خیر است و اگر روی برتابند خداوند به عذاب درناک ایشان را در دنیا و آخرت عذاب می کند و ایشان را در روی زمین نکار سازی است و نه هم مددگاری و از ایشان کسانی هستند که با خدا پیمان بستند که اگر از فضل خیش ما را برخوردار ساخت بیگمان صدقه می دهیم و بیگمان از مردم نیکوکار می شدیم اما چون از فضل خود و ایشان ازانی کرد بخل ورزیدن و از پیمان خیش برگشتن و از ایفای آن اعراز کننده بودند. پس به سبب خلف و ای که با خدا کرده بودند و دروغی که گفته بودند در آخر کار نفاق را در دلهایشان جا داد و تا روزی که او را ملاقات می این حالت دوام دارد آیا نمی دانند که خداوند سخنان پنهان و رازشان را می داند و خداوند به همه امور غیب کاملن داناست؟ آنانی که دوتلبان مسلمانان را در صدقاتشان مزمت می کنند و آنانی را که جز سمره کاری چیز را نمی که صدقه بدهند تمسخور می کنند خداوند خود ایشان را مسخره کرده است و برایشان عذابی درناک است. خواه تو برای ایشان طلب آموزش بکنی یا طلب آموزش نکنی اگر تو هفتاد بار هم برایشان برای طلب آموزش کنی هرگز خداوند ایشان را نمیآموزد این از سبب است که ایشان از خداوند و پیامبر او انکار کردن و خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند متخلفان غزوه تبوک از اینکه که با مخالفت رسول خدا و جای خود نشستند شادمان شدند و از اینکه با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند کراهیت نشان دادند و گفتند در گرما به جهاد بیرون نروید بگو آتش دوزخ در گرمای خود شد است اگر ایشان نمی‌فهمیدند آنها باید کمتر بخندند و بیشتر بیگیرند این جزای کارهایی است که انجام میدادند پس اگر خدا تو را و سوی گروهی از ایشان بازگردان که از تو اجازه بیرون شدن به جهاد را بخواهند بگو ابدا با من بیرون نشدی و هرگز همراه من با دشمن نجنگی بگو من شما در نخست با نشستن با متخلفان خوشنود شدی پس اکنون نیز با متخلفان بینیشید بر هیچیک از ایشان که بمیرد ابداً نماز مدزار و بر قبر وای ماییست حقا که ایشان از خدا و پیامبر او انکار کردند و در حالی که فاسق بودند مردن اموال و اولادشان تو را به تعجب نیندازد بی خدا اراده کرده است تا ایشان را به وسیله آن در دنیا عذاب کند و روحشان در حالی برایت که کافر باشند و چون سوره نازل شود که ایشان را توسیه کند به خدا ایمان آورید و به همراهی پیامبری او جهاد کنید توانگران سروعتمندشان از تو اجازه یعنی معافیت می و میگویند ما را بگذار تا با بازنشستگان از جهات باشیم با این خوشنودند که با بازماندگان یعنی زنان خاننیشین باشند بردلهایشان مهر زده شده است پس ایشان نمی فهمن. ولی پیانبر و مسلمانان همراه او به مال و جان خود جهاد کردند و هم ایشانند که هم خوبی ها از آن ایشان است و هم ایشانند درستگار خداوند به ایشان به هشتهایی را آماده ساخته که در زیر درختان آن جویبارها جیران دارد در آن جودانا به سر میبرند این است درستگاری بزرگ و اوزرخواهان از بادینشینان نیز آمدن تا به ایشان نیز اجازه معافیت داده شود و آنهایی که خدا و پیامبر او را تکذیب کردند از جهاد باز نشستند به زودی عذاب دردناک دامنگیری کافرانشان میشود. فرناتوانان بیماران آنانی که چیزی نمیابند تا آن را در راه خدا مصرف کنند گناهی نیست به شرط که با خدا و پیامبر او صادق باشند به با ملامت کردن نیکوکاران راهی نیست و خداوند آمور زنده و مهربان است و نه هم به کسانی ملامتی راجع می شود که چون پیش تو آمدن تا ایشان را با وسیله سواری برداری به ایشان گفتی چیز نمی آبیم که شما را بر آن برداریم در حالی که از چشمانشان اشک جایی بود از اندوه اینکه برای مصارف حمل و نقل خود چیزی نمی آبند برگشتند بیگمان راه ملامتی بر کسان است یعنی کسانی مؤاخظه می شوند که از تو اجازه معافیت می گیرند در حالی که توانگرند ایشان به این خورسندند که با بازنشستگان یعنی زنان خانهنشین باشند و خداوند بر دلهای مهر زده است پس ایشان نمی دانند. به شما عذر میکنند هنگامی که به با سویشان بازگردید بگو عذر مخواهید هرگز سخن شما را باور نمیکنم که خدا ما را از احوال واقعی شما آگاه ساخت و به زودی اعمال شما را خدا و رسول او میبینند بعد از آن به سوی ذات دانای پنهان و آشکار بازگردانید میشوید پس شما را به آنچه میکردید آگاه میسازد چون به ایشان باز می برای شما با خدا سوگند میخورند تا از ایشان اعراض یعنی صرف نظر کنید، پس از ایشان اعراض کنید بگمان ایشان پلیدند و جایشان جا دوزخ است، جزای آنچه می کردند با شما سوگند میخورند تا از ایشان خوشنود شوید پس اگر شما از ایشان خوشنود هم شوید، خداوند هرگز از مردم فاسق خوشنود نمی شود با دینش در کفر و منافقت شدید ترند و سزاوار به این که احکام را که خدا به پیامبرش نازل کرده ندانند او با حکمت است بعضی از بادنشینان کسانی اند که آنچه را مصرف می یعنی زکات می دهند، تاوانی می پندارند و بر شما گردش روزگار را انتظار می بر ایشان سختی روزگار باد و خداوند شنوا و داناست و از باید کسی هست که به خدا و روز آخرت ایمان می آورد و آنچه را به حیث زکات می پردازد مایه تقرب به خدا و دعاهای پیامبر می داند هان بگمان این چیزها ایشان را مایه تقرب به خداست و زودی خداوند ایشان را به رحمت خود داخل می گرداند حقا که خداوند آمرزگاری مهربان است ایشان نخستین اسلام از مهاجران و انصار و کسانی که ایشان را به نیکی پیروی کردند خداوند از ایشان خوشنود گردید و ایشان نیز از خداوند خوشنود شدند برایشان برای بهشت‌هایی را آماده کرده است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد در آنجا جاودانه و سر میبرند این است رستگاری بزرگ بعض از باجه نشینان که گردا گرد شمایند منافقند و همچنان از اهل مدینه گروهی هستند که به نفاق عادت کرده اند تو ایشان را شناسی ما ایشان را میشناسیم بزودی ایشان را دوبار عذاب میکنیم و سپس ایشان به عذاب بزرگ بازگردانی دا میشوند و گروهی دیگر با گناهان خیش اعتراف کردند ایشان عملی نیکو را با عملی دیگری که نیکوهیده است درهم زود است خداوند توبه ایشان را بپذیرد حقاک که خداوند آمرزگار و مهربان است از اموال ایشان صدقه یعنی زکات بگیر تا ایشان را با آن صدقه پاک سازی و برکت بهی به با ایشان دعا کن حقا که دعای تو برای ایشان مایه آرامش است و خداوند شنوا و دانه آیا نمی دانند که بیگمان خداوند هم اوست که توبه را از بندگان خود قبول می کند و صدقات را می پذیرد و بیگمان خداوند توب پذیر و مهربان است؟ و بگو عمل کنید و زودی خداوند پیانبر او و مؤمنان عمل شما را می بیند و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانیده می شوید سپس شما را به آنچه کرده اید آگاه می سازد گروه دیگر قبول توبه ایشان به حکم خدا معطل گردیده است یا ایشان را عذاب می کند یا توبه ایشان را می پذیرد و خداوند دانا و با حکمت است و کسانی که مسجد برای زرر و تقویت کافر و نفاق افغانی بین مسلمانان گرفتن و کمینگاهی برای کسی که با خدا و پیانبرش از پیش جنگیده است بگمان سوگن میخورن که جز خیر اراده نداشتیم و خدا گواهی می دهد بر این که واقعا ایشان دروگوی هست. برای نماز هرگز در آنجا ایستاده مشو واقعا مسجدی که از روز نخست اساس آن بر پرهیزگاری نهاده شده است از سزاورتر است که در آن به نماز استاده شی. در آن مردانی اند که دوست دارند تا خوب پاک شوند و خداوند پاکیزه کنندگان را دوست می دارد. و یا کسی که بنیان امارت خود را بر ترس از خدا و خوشنودی او نهاده بهتر است یا کسی که بنیان آن را بر کناره زمین سل برده ای که به شرف افتادن باشد نهاده است پس با آن در آتش جهنم فرو ریزند و خداوند گروه ستمگران را رهیاب نمی سازد؟ امارتی که ساخته اند همیشه مایه استرار دلهایشان است تا هنگامی که دلهایشان پاره پاره شود و خداوند دانا و با حکمت است بگمون خداوند از مسلمانان جان و مالشان را در برابر بهشتی که به آنها میدهت خریده است ایشان در راه خدا می جنگند پس می کشند و کشتنی شوند این وعده است، بر خداوند در تورات انجیل و قرآن و چی کسی نسبت به خدا به عهد خیش وفادار است؟ بس به داد و سبت تودی که به آن معامله کرده اید خوش باشی و این از تومان دستگاری بزرگ توبه کنندگان، عبادتگران، سناگویان، سیاحت کنندگان در راه خدا رکوع کنندگان، سجد کنندگان، امر کنندگان به کار پسندیده و نهی کنندگان از کار ناپسند نگه حدود خدا همین های مسلمانان واقعی و به این مسلمانان مجده برای پیامبر و مسلمانان سزاوار نیست که برای مسرکان اگرچه خیشاوندانشان هم باشند آمرزش بخواهند بعد از آنکه که برایشان روشن شود که ایشان اهل دوزخ و آمردش خواهی ابراهیم برای پدرش صورت نگرفت، مگر به اساس وعده ای که با او کرده بود چون به ابراهیم روشن شد که پدرش دشمن خداست از او بیزاری جست حقا که ابراهیم بسیار نرم دل و بردبار بود چنان نبوده که خداوند قوم را گمراه سازد بعد از آن که آن را رعیاب گردانید است مگر آنکه و ایشان چیزی را که باید از آن پرهیز کنند بیان کند حقا که خداوند به همه چیز داناست است که پادشاهی آتمان ها و زمین از آن خداوند است او زنده می گرداند و می میراند و برای شما جز خدا هیچ کارساز و مددگاری نیست بگمون خداوند رحمت خیش را شامل حال پیامبر مهاجرین و انصار که در لحظات دشوار غزوه تبوک از پیامبر پیوی کردن نمود بعد از اینکه نزدیک بود دلهای عده از ایشان منحرف شود سپس ایشان را شامل رحمت خیش ساخت بیگمان او با ایشان رعوف و مهربان است و نیز برای سه نفری که در قبول توبه به عقب گذاشته شده بودند تا اینکه زمین با فراخی آن بر ایشان تنگ شد و وجود خودشان بر آنها ها می کرد و یقین داشتند که از خدا هیچ پناهگاهی جز به سوی او تعالی و تقدس نیست بعد از آن خداوند توبۀی شانرا پذیرفت تا به خدا باز گردند حقا که خداوند هم اوست و پذیرو و مهربان ای مؤمنان از خدا بترسید و با صادقان باشید برای مردم مدینه و بادیه که در ماحول اوشان قرار دارند شایسته نبود که از اشتراک در غزوات با پیانبر خدا تخلف ورزند و نه اینکه به زندگی خود بیشتر از زندگی پیانبر رغبت ورزند این سبب است که به ایشان هیچ تشنگی و هیچ رنج و هیچ نگی در راه خدا نمی رسد و به هیچ موضع قدم نمی گذارند که کافران را به خشم آرد و هیچ ای را از دشمن نمی خورند مگر آنکه به سبب آن به ایشان عمل نیکی نوشته می شود حقاک خداوند مزد نیکوکاران را زعیه نمی سازد. و نه چیزی را خرچ می کنند خواه کوچک باشد یا بزرگ و نه هم در را می مگر اینکه برای ایشان نوشته می شود تا خداوند به ایشان در برابر عملشان بهترین پاداش بدهد و شایسته نیست برای مؤمنان که همه یک جایی به کارزار یا طلب علم بیرون شوند. پس چرا از هر جمعیتی گروهی از ایشان بیرون نشوند تا در امور دینی دانایی حاصل کنند و قوم خویش را از ارتکاب اعمال ناشایسته دیم دهند در هنگامی که سوی ایشان باز میگردند تا باشد که ایشان بترسند ای مؤمنان با کافرانی که نزدیک شما هستند جنگ کنید و باید آنها در شما شدت و خشونت احساس کنند و بدانید که بیگمان خداوند با پرهیزگاران است و چون سوره نزل یابد بعضی از ایشان به دیگر میگویند این سوره به ایمانی کدام از شما افزوده است پس به ایمان کسانی افزوده است که ایمان آورده اند و ایشان خوشحال میشوند ولی آنان که در دل هایشان مرض است نزول سوره شک را بر شکشان افزوده است و ایشان در حال کفر مردند آیا ایشان نمی بینند که در هر سال یک یا دو بار آزموده می شوند؟ ولی با این هم توبه نمی کنند و نه پند می گیرند؟ و چون سوره نزولی یابد یکی به سوی دیگری دیده می آیا کسی از مسلمانان شما را می سپس باز می گردند، خداون دلهایشان را از روشنایی باز داشته، به این اینکه ایشان مردمی ان که نمی فهمند بیگمان از خود شما با شما پیانبر آمده است، رنج شما بر او سخت است با خیر شما حریص است و بر مؤمنان او فور رحیم است پس اگر رو بگردانند بگو خداوند مرا بسنده است جز او معبودی نیست بر او توکل کردم و او پروردگار عشی عظیم